در بهار جلد 75 صفحه پنج صفحه 111 و بلعقله باز از امام مجتبی علیه السلام و بلعقله تدرک و دارانه جمیعا با عقل دوتا عالم چه این عالم چه عالم دیگر جمیعا دریافت میشه یعنی میخوای دنیا داشته باشی اهل تفکر باش چون تفکر کار عقله با عقل میخوای آخرت داشته باشی عقلتو رو به کار بگیر کار اصلی عقلم تفکره که بالا عرض کردم و من حرمه من العقل اون کسی که از عقل محرومه یه وقت صحبت مثلا یه بنده خدایی بود همینجوری از باب مزاح حالا رو بروش ایشون خیلی خلوص داره از عقل یعنی <مید> <مید> هیچ عقل نداره خالص از عقل بعضیا خلوص دارن خالصن ولی از عقل لذا دعای برجستگان عالم اینه من پنج ساله بودم یه معلم قرآنی داشتم تو پنج ساله یه به من یاد داد حق به گردن من زیاد داره خدا رحمتش کنه هم مرد خدا بود یه چیزایی هم داشت خدا رحمتشون کنه ایشون داش این بود سب زمزه را می‌رفتیم دعا می‌کرد می ایستادیم دعا می‌کرد مینشستیم دعا می‌کرد توی امامزاده همش خدا به من عقل بده خدا به من عقل بده خدا من عقل بده یه مجلسی روزه رفته بودیم ایشون یه بنده خدایی بود داشت چای میریخ این یعنی میگفت خدایا به من عقل بده. اون میگفت خدایا به من ثروت بده. گو خدایا این هرچی می‌خواد بهش ولی به من عقل بده. من عقل رو می‌خوام. حالا و بالعقل تدرک و داران ها با عقل که میتونید آخرت رو برای خودتون داشته باشید. و من حرم من العقل اون کسی که از عقل محروم شد حرم اوما جمعیان، از همه اینا محروم نه دنیا رو خواهد داشت نه آخرت رو عقل کارش چیه؟ عقل کارش اینه که تفکر کنه